آنو. من داماده آقاسمم بله راستش میخواستم بگم من همه تلاشمو کردم ولی ایشون و دخترشون راضی نمیشن شما رو ببینن خیلی متاسفم میدونم میدونم ولی باور کنیم من همه سامو کردم ممنون خداحافظ چی شد؟ میگه آقا اجازه نمیده این دفعه میرم در خونهشون اینقدر میشینم تا خودش بیاد بیرون فایده نداره اینجوری بدتره بفهمه رفتیم در خونش نشستیم بیرون نمیاد بعد ایلی فتر اولین دادگاه ما حتما باید قبل از دادگاه ببینمش میخواین این دفعه با بزرگتر فامیل بریم در خونه شاید به قرمت سن و سالمان رو اون بدن شاید برو دفترچه تلیفونو بیار به چند نفرشون زنگی بزنم ببینم چی میگم جش ایشالا که درست میشه نگر نباشه شریفی آقا باز کن یه چهار کلم حرف بزنیم با هم آقا سم آی شریفی آقا وا کن بدیم چهار کلم حرف بزنیم آقا سم آقا شریفی حجا دار می خوام برام باهاشون حرف بزنم نمیخواد خودشون میرن دیگه اینطوری که نمیشه ای بذار حرفشون رو بزنم واگرنه هی می خوام میون جلوی در خونه میخوای برم با بابا صحبت کنه نه نمیخواد من با بابا حرف زدم گفته نمیخوام ببینم ایشون چیکار دارین میکنین خوام زنگ بزنم پلیس بیاد اینا رو برداره کار درستی نیست من راضیش می که بره. پس بهشون میگی دیگه این برا پیداشون نشه چاش تا آقا سئونو ببینیم هیچ جا نمیدونیم. آقا جون من این همه برایتون توضیح دادم. آقا نمیخواد ببینه شما رو. شما بهتره بریم کجا بریم پسر من؟ فردا پس پتر پسردان دادگاست. ما باید قبل از دادگاهشونو ببینیم. خانم محترم مادر من این جلسه که جلسه اول آخر دادگاهی اون سری هم بهتون گفتم بذار یه کم وقت بگذره. یه ذره زمان بگذره یه خورده نرم بشن. دی اصرار میکنین بدتر کارم خرابتر میکنین لج اونارم هم در میاره آقا مایه چی بنده خدا مادرشه از آقا یه آقایی بخو میبینه بنده خدا بیاد باش رو حرف رو بزنه آمار. حل میشه بخده. دست من نیستش که اگه به من بود میگفتم بیا برو آخه دست من نیست که نمیشه شما بالاخره داماد این خانواده ای نمیشه مادر من اینجوری بدتر عصبانیشو میکنید یه دقیقه مادرش میاد داخل حرف میزنه برمیگرده ای بابا چرا شما متوجه نمیشین؟ اونا نمیخوان حرفای شما رو بشنبن بباشید سلام سلام آمه حتیم شما پلیس ما سیار کرده این؟ بلی موشگلی هستم زمینک نیجا نه خانم من یکم عصبانی شده از سر در زنگ زده اینا برای پسرشون اومدند اومد در خونه مبرز زن طاهر خانم طاهر خانم ببینیم خونه کجا بریم مادر با وسیم تا رامون بده خب ببینیم پلیس خبر کرده هرچی بیشتر اینجا بمونه ببینن تر میشن دامادشون راست میگه حالا که وقت هست فردا عیده انشالله اینا لباس مشکیشون رو در میارن یه خود آرومتر میشن و آمون رامی هم بریم خدای آراشم بزرگی بریم فهمیم بریم اون از بیرات کنم بیفاید است بریم بهتری فقط تازه نیفتاد بابا با خونواده آرش رفتیم دم خونه مقتول ولی پدرش هیچ تو را نداد خب حالا یه رضایت ندن میخوای چیکار کنی کنیم آرش نیست بابا بل. ما همه تلاشمونو داریم میکنیم این اتفاق نیفت اون روزی که اومد دفتر باش با حرف زدم ازش خوشم اومد فهمیدم چوانه با زنمو زحمت کشیم بله حقیش نیست ولی سرنوشش این بوده هم نمیشه کرد تا هم اما یه عمرت از آقا بکشی آقاییت رو باید بپذیری من مگه چقدر دیگه فرصت دارم تو دا بتونم کسی دوست داشته باشم فکر کنم باش خوشبخت اگه خدایی نکرده این اتفاق برای کس ماها میفتد چما تسلیم میشدی نمی جنگیدیم در خونه و ببخشن تو مقای پای آرش بایدی؟ میدونی چند سال زندانی داره؟ اگر من تا هر موقع که لازم باشه طول بگشت سب مکنم دلتا اعمالش تنهایی سخته شما پشت من نیستی شما فقط کار آرش رو یه اتفاقی که توی لحظه عصبانی افتاده چه می چی بارش گذشته چه ازا می کشیده می بره دوبار بیلیت گرفته بود منتوام بده بچه من رو تناش بزارم نبخشنشم تا هر موقعی که باشه من کنارش میم. ز بعدیه که فکر می‌کنم فروش داد نیستی. ناروشه کنارتیم و در هم فدرت. و خستا مزایب تو بشم تهسلن من نیستی آقا سن شون مدیریت مایی سرور سپردیم به من چرا؟ جبران جبرانه گذاشته. با این جبران بابای زنده میشه؟ مسلماً که من بی پدر بزرگ شدم. نجورانش کنه ما جفتمون اشتباه کردیم شما میدونی من اگه نرفته بودم ماهی سره اون اتفاقه نمی افتاد. خب پای آرشم به این ماجره باز نمی شد از منم مغصرم بلی شما تقصیر من گذشتی خب تو از تقصیر من بگتر من گذشتم که حالا اینجا خب از چه کار داری؟ به خاطر آرش اومدی؟ تو همه این چند دفعه که می اومدم اینجا میخواستم ازتون بخوام به خاطر من کوتاهی. بیایی بلی هر دفعه شما و دخترتون نمیذاشتین نمیذاشتین حرف بزنم آقا سم این ماجرا خیلی چیزا به من یاد داد همه چیه اینه زنجیره میتونستم شما رو ول کنم تو آتیش بلی نشد وجدانم نزاش خدا رو شوچوک خدا رو صد هزار مرتبه شکر شما هم سالمین منظورت اینه که چون من جونم رو به تو مدیونم باید از خونه بچم بگذارم احساس حق شماست خدا این حق رو بهتون داده. اما خودم فکر میکنم این اینکه شما از توموناتی سوزی نجات پیدا کردین این یه حکمتی داره. نمیدونم شاید قرار شما جونه ی آدم دیگه رو نجات بدین. آقا من یه کار کوچیک در حق شما کردم در حق خودم کردم. شما زنده این میتونین ادامه بدین بلی انتخاب با شماست میتونین وای این پای حقتون میتونین هم ازش بگذارین کسی چه میدونه شاید بعداً تو آینده آرش کلی کار خیر بکنه و تو ثواب همه شما هم شریکی از تموم پیرانده که فاملا دو بردن قشنگ داره بلنش بلنش هم بشی اینو بپرشم وقت زیاده میبوشم الان وقتی شه چهلوم هم ازم عید خوبیت نداره قاسم جان خوبیت نداره نگران دادگاه فردایی آرش بعد نگران باشه چرا من؟ رو می‌برید چای شما که خودتون همه چون می خوام از زبون خودت بشنم آقا به خدا من نمی خواستم بشه. سامان دعوا شده بود وقتی دعواشون شده بود دسته آقا پشمان تو بسط دعوا خورده بود تو صورت شادی من شب اومدم خونه دیدم شادی ناراحت داره گریه میکنه. پایین چشمشم کبوت بود بودناخوااست هم زده بود. ازش پرسیدم چی شده؟ برام تعریف کرد ولی همه چی رو درباره سامان نگفت. همین عصبانی رفتم سمت شرکت که باهاش حرف بزنم شادی گفته بودش که باب اجمان میخواد فرداد صفتاش رو بذاره اجرا من میخواستم صفتاش رو ازش بگیرم همین باش تون طرف سدم اونم حرفای بدی به شادی زد عصبانی شدم دست بیقی شدیم بعد بعدم نفهمیدم چی شد که این پرتش کردی پایی من نمیخواستم اصلا شکه شده بودم اومدم بازا سرش درسیده بودم سوار و شدم رفتم اما نتونستم برگشتم اصلا, نمی... اصلا نمیدونم چطوری رسوندمش بیمارستان آقا قاسم شما نمیدون این روزا به من چی گذاشت تازه داشتم روی موفقیت و خوشبختی میدیدم دختری که تو دوران دانشجویی دوستش داشتم حالا پیداش کرده بودم برنامهی که چند سال برای زحمت کشیده بودم و روش کار کرده بودم حالا به نتیجه رسیده بود خوشحال بودم که حالا کار زندگی خودمو دارم زندگیم زیرو رو شد. برای چی اومدی تو خونه و زندگی من؟ نمی‌دونم. قسم کمایکتون کنم. من به سر شما را گرفته بودم. اخ خب... اخو خب نمیتونم اصلا بذار تنها بدم. مسئله دیگه هم بود. شما یاد پدرم میانداختی. می‌خواستم کنارتون باشم. ولی خیلی براش سخت شما شو شو من چه عذاب کشیدم این مدت. این در مقابل مرگ و چه شما هیچ چیز هر کاری باهم کنید آخدری هر کار چی کردی با زندگی من جامو یه چیزی بخور نمیتونم مادر هیچی از گل اون پایین نمیره خواهی که نمیشه شاید دادگاه خیلی طول بکشن چیز ضعف میکنی اصلا پام نمیکشه بیام دادگاه بچه با لباس زندانو دست بم ببینم ای خدا اصلا میخواین شما نهیان میکی میشه مادر اون بچه چشم انتظار منو ببینه بخواه این حالت شما رو ببینه بیشتر از زیاد میشه ایچ کنم هر طور شده باید بیام لونست من کی فهم پردارم Toladoru manam بابا چی کار داری قربونت برم میخواییم بریم دادگاه دیر شد شانم به گردونگای یادگار داشت رسیدهگی میکنم بابا دورت بگردم من پیرنه چه قشنگویت میاد تو اون لباسه که دیروز برتون رو بردن این نبودا. نه این جز دیروزی ها نیست خودتون خریدینش نه بابا یه حاکی از طرف هم به اون که براتون هرگه خریده بگید خیلی خوش سرقه دستش درد نکن چشم پشش میگید بابا برم مدارک رو جمع کنم بریم دیره ها دیروز خودم دادگاه بوده چیکار کردیم کردی بابا؟ بخشیدمش به نفع جفته بوم بود هرچی فکر کردم در من و تو نمیتونیم تا آخر عمر از بکشیم هم تو میدونی بابا هم من میدونم که این پسر هم در این کار را نکرده تو این مدتم هرچی ازش خواستم تا اونجایی که از دستش برمی واسم کوتاهی هم کتایی نکرد بدشانسی و آرش و هجمان این بود که مقابل هم قرار گرفتن بابا تمام این وقت مشغول بود ذهنم که احساس بکنم یا ببخشم هرچی فکر کردم حتی تو ذهنم نمیتونستم قبول بکنم که سر آرش و دار ببینم اون ذاتن آدم کش نیست و او آدم خوبیه تو مدت خیلی خوب شناختمش گناهکاره خطاکاره میفهمم بچه منو کشته برادر تو رو کشته ولی ذاتا کارش آدم کشتن نیست تو این مدت خیلی خوب شناختمش خیلی خوب نه تنها بد نیست بلکه آدم خوبیه مثل برادرت آره کشتن آرش هیچ آرامشی به زندگی من نمیبخشه تو نمی من پسرم و تو برادرتو از دست دادیم هجوان رفته دیگه بر نمی من تو دیگه باید با این واقعیت کنار بیایم بابا. باید قبول کنی حالا پاشو با هم میریم به مایسرا برای شرکت مزایدهی که برادرت دلش میخواست سر و سامونش بده حالا ما دوتا میریم سر و سامونش بدیم آن هیچ کاری برای من و تو واجب تر از این نیست پاشو سال خوشحال نیستی چرا خوشحالم بلی قاسم شرط گذاشته که دیگه هیچ وقت نباید دورو برش بشه خب مهم نیست همی که بخشی دادت خیلی کار بزرگی کرد رونا من نمیدونم تو قانون رو یا نه ولی من چند سال باید زندان بمونم خب که چی فکر در بیار از سر من اینجا نمیرم من معلوم نیست چند سال زندان میمونم این اون چیزه که میگی واسه مهمونیست با توازید شد یکی دو شدید که با وسیقه آزاد چید شایدم نشم من من نمیخوام زندگیت پای من از بین بده یکتر حرف بی خود نزن نمیدونم اگه تو بودی چی کار میکردم نگر نباشی بخواسی جو براد نست آه بیا بایدی از دست تا آرشد الان مادر چه حالی میشه تو یه هویر خونه؟ منم برای همین نگفتم درام آزاد میشن نیگه قرار بود هفته دیگه بیایی بیرون آره کنم باورت میشه دلم برای ترافیک یه رفتن ساده تو خیابونه و مردم برای همین رو دلم تنگ شده فقط فهمیم برای من زرمایت کشفی واقعا نمیدادم چطوری جبران کنم نمیخواد جبران کنی فقط قول بده که چیزی هزم پیمون نکنی هرچی میشه به هم بگو نبول کن مرگ پشمان چیزی نبود که بخوام بهت بگم باید میگفتی هنو تو قولی شرکیت در چه آدید؟ آلی سی سده زار نفر دیگه آبا نسب کرده. چند نفرم استخدام کردی؟ یه با شباش باید فکری جای بزرگتر باشی خب خدا رو شب چقدر آلیم من که صحبه ما بردوشنه ما رفته شوخیت گرفته؟ نه بابا چه من فکر نمی‌کنم دیگه اونجا جایی داشته باشه قرار داده تنو جاشه رامینم رو حرف من حرف نمی سن دستی هم که جاد نهی بردی یعنی از فردا برمیگردی سر کار. خونقادت چطوره؟ تبره ات مادره خوبه در من چی فکر میکنم؟ نگران نباش رازیشون میکنم بالاخره یکم زمان نیاز دارم ولی من میدونم تایی دلشون مخالف نیست واسه وگه نهنگفتی شرش واسه بخشی داه که دیگه ننی سرا میشه. تاریکی شب آه در جریان بود زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یه بارون بارید دستای خون پر از گل داوودی شد از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونش بل شدن گفتم این یه ماجز است خیر شد به آسمان همه ستاره ها دونه دونه گل شدن مهربونی رونی ایش نزنی آخریم تیکه ایم جورچینی ایش می رونی ایش نزنی آخریم تیکه جورچینی باد بادکم و یه جوری با میکرد کرد، اینکه تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم یه جوری تشنم کرد اون که میشد دریا را مثل یه آب یه نفس سر بکشم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 مهربونی ایش ای نازنینی ای ایش آخرین تکیه ایش جورچینی ایش